من دوست دار روی خوش و موی دلکشم مدهوش چشم مست و مه صاف بیغشم گفتیز سر عهد ازل یک سخن بگو آن گه بگویمت که دو پیمان درکشم من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم در آشقی گذیر نباشد ساز و سود استاده ام چو شم مفرسان ز آتشم شیراز معدن لب لعلست و کان حوز من جوهری مفل را مشبشم از بس که چشم ماست در این شهر دیده حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم شهریست پر کرشمه هوران ز شش جهت چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم بختر مدد دهد که کشم رخت سوی دوست گی سوی خور گرد تشاند زمفرشم حافظ عروس طبعه مرا جلوه آرزوز آینه ندارم از آن آه می کشم.